به شهلی صدری و یسلی امری وحلو من لسانی یفقه و قولی سلام و عرض ادب و احترام خدمت همه سروران ارجمند تبریک عرض میکنم میلاد با سعادت حضرت ولی عصر رو خدمت شما بزرگواران بحثی رو که در خدمتون هستم بحث مبانی رجالی و یه مقدار هم بحث های فقل حدیثی عزت آقا هستش ببینید دوستان حالا این پاور را من انشالله خدمتون تقدیم می تمام بحث که انشالله خدمتون ارائه دادیم می شه بحث های مستندی هستش انشالله رفقان من این اف رو میدم که در خدمتون ما تون خب عرض کنم خدمت شما منابع این تحقیق ما دوستان دروس خارج رهبر معظم انقلاب هستش خب از اون جایی که حضرت آقا غیر از اون کتاب هایی که حالا قبل از انقلاب بوده اون چار کتاب اصلی رجال هست کتاب رجال مستقلی ندارن که مثلا خودشون تدوین کرده باشن از این از طرف دیگه درس رجال مستقل هم نداشتن لذا منبعی که توی دسترس ما بوده مجموعه دروس خارج از آقا هستش که ما این مطالب رو از اونجا استخراج کردیم البته خب یه پایان ای الان آماده شده حالا به راه الان تقریبا آماده دفاع هستش یه کتاب رجالی هم در حال نبارش هستم که این تقریبا فیشاشه این فیشه در, در واقع حجم مطالبی که در درس خارجه ها هست در مورد نکات رجالی و فقال حدیثی یه چیزی شبیه تقریبا 700 صفحه است. که الان این داره منظم میشه تو قالب یک کتاب رجالی انشالله فکر کنم برای سال آینده ما بتونیم این رو چاپ بکنیم خب ببینید دوستان عجب کردم با تعجب اینکه ما منبعمون در سایه خارج از اتکا بوده طبیعتاً فیش‌ها از اونجا برداشت شده و ببینید ترتیب زمانی دروس خارج از اتکا اینجوری یعنی اگر بعداً خواستید مطالب ما رو اعتبار سنجی بکنید ممکنه مثلا تو این از سال 1380 که درس خارج از اتکا شروع شده تا اسفند 1398 که دیگه جریان کرونا دیگه کلاس ها شد شده دیگه هم خب هنوز برگزار نشده. طبیعتا اگر یه مطلب بحصل کنید یک آدرسی رو از کتاب بساس از میگیم، اگر تو درس بعدی این مطلب نظ شده باشه، طبیعتا باید ما آخرین نظر از اتاق رو بگیریم. سعی بوده تو جمعبندین اتفاق بیفته اما اگر قفلتی شده یا مثلا نکتر رو ما ندیدیم که بردم هست ما سعی کردیم که، مطالب مطالبو استخراج کنیم طبیعتاً این جوریه دیگه سال 1369 بحث درس جهاد از اتا بوده بد قصاص بد مکاسب محرمه که مکاسب محرمه خوب خیلی مفصل بوده چون بحث قنای آقام که الان دست ما مش شده اون هفته که چند جلسه در ذیل همین کتاب مکاسب محرمه گفته شده و سالات مسافر و نماز جماعت آخرین مبحثی بود که حضرت آقا مطرح کردن که دیگه درس خارج فعلا تعطیل شده و هنوز هم برگزار نشد پس این در واقع منبع ما هست برای این بحث خب من از مقدماتش میگذرم از کردم چون پاور رو شالا تقدیمیتون می کنیم دیگه سری مباحثی که تو این هست رو من انشالله ارجاع میدم به مطالعات خودتون از این در واقع مطلبی که خدمتتون میدیم ابتدان بریم در ارتباط با بحث حجیت خبر باهت صحبت بکنیم. ببینید دوستان عته سروران خب و معلومه که اکثرا درس خارج بون هستند تقتا مبعث مقدماتی که ما میگیم دوستان بلد هستن اما اجازه بدید بالاخره بعضی از مقدمات رو قبل از اینکه من بخوام نظر از تو آقا رو بگم برخ از مقدمات رو بگم فقط برای اینکه یک یادآوری شده باشه تو فضای بحث دوستان قرار بگیرم و بعد انشاالله ما بتونیم، نظر از حضرت رو تو این زمینه ذکر میکنه ببینید در ارتباط با ملاک حجیت خبر واحد خب شما میدونید دو تا قول مشهور وجود دارد بعضی ها ملاک حجیت خبر واحد رو وساقت راوی میگیرن در واقع وسوق مخبری هستن و برخی ملاک حجیت خبر واحد رو وسوق به روایت میدونن یعنی وسوق خبری هستن و شما آشنا هستید خب حضرت آقا از بین این دو تا نظریه میفرماند که معیار قبول خبر واحد موثوق بودن صدور روایت است یعنی حضرت آقا وثوق خبری هستند از بین اون دو تا نظر میدونید مشورای آقای خویی و اینها یعنی در مدرسه آقای خوی اونها وثوق خبری هستند و معیار اعتباری مخبری هستن. مخبری هستند و میار رو در واقع وساقت فقط روبات میدونن اما از آقا میفرمون خب این وسوخ چطور ایجاد میشه یا این وسوخ از راه راوی به دست میاد یا از طریق قرائن به دست میاد ایشون میفرمون البته یکی از تقریرات آقای خویی وسوخ از راه در واقع وسوخ فقط از راه راوی ایجاد میشه که ایشون میفرمون ما این تقریر رو قبول نداریم آدرسش هم دیگه زک شده دیگه مثلا کتاب مکا کتاب المکاسب میگیم یعنی درس مکاسب عزتا آقا مکاسب محرم از آقا جلد جلسه 15 اما ایشون یه سری مبانی دیگه در بحث حجیت خبر واحد دارن که من 5 6 موردش رو اینجا آوردم اولیش این هستش که ایشون میفرمایند اون در واقع مسائلی که مهم و عامل و بلوا باشن با توصیقات عام شما نمید یعنی یه روایتی که با توصیق عام و به صدورش پیدا کردیم نمیتونیم از اون روایت استفاده کنیم من نموناش رو سر میکنم مسائلی هم که ذکر میشه نموناش رو از متن خود از آقا خدمتون ذکر بکنم مثلا ایشون میفرمایند که این که ما عشقسیات را قبول بکنیم همین است که ابن قولوی از پدر و پسر در کتاب خود رواحت کرد خب پدر کیه مصبن اسماعیل هست و پسر هست پدر کی اسمایل ابن مصبن جعفر علیه السلام یه عشقسیات رو میخوایم قبول بکنیم به خاطر این هستش ولی یک اماره است بر وساقت این دو بنابراین از این جهد ما روایات اینها رو به معنای یک مرحله از وساقت قبول میکنی لکن وقتی که یک مسئله مهم و آمولبلوایی وجود داشته باشد مثل مسئله ما نحنفی که اونجا مسئله از آقا حرمت معامله بر اعیان نجس است که مسئله برحال آمولبلوایی هستش یه خوی مسئله مسئله کوچیکی نیست یک مسئله مهم نیست یک مسئله است. و هیچ دلیل دیگری هم غیر از این روایت نداریم آن وقت انسان نمیتواند به خاطر توسیق آم ابن قوله وی بیا این روایت رو قبول بکنه و حکم بده پس ایشون یکی از اون در واقع مبانی که دو بس اوجیت خبر رو باید دارن این هستش. اگر یک مسئله مسئله آمول بلوا بود صرفاً و اعتبار اون روایت از طریق توسیقات آم درست شده بود این به در نمیخوره دومی دو مبنا عدم اعتبار روایت روایت موسوع موسق به توصیق آم در صورت تنافی با قواهه باز هم اگر یک روایتی اعتبارش به وسیله توصیقات آم بود اگر این روایت عرض کنم خدمت شما در واقع معارض داشته باشه اینجا ما نمیتونیم این رو قبول کنیم از دیدگاه حضرت آقا با عنوان نمونه ایشون که یه روایتی هستش سندش اینه ان سفار ان, ال... ان الحسن ابن موس... موسای خشاب. ان قیاس ابن کلوب یا کلوب حضرت آقا میفرمایند که خلاصه برخی از آقایون کلوب خوندن کلوب هست کلوب هم هست ان اصحاق ابن امار ان عبی جعفر که حالا این رجلن قتل امرعتن فلم یجعل علیان علیه السلام بینه همو قصاصن الازم و هدیه خب حضرت آقا می که ارز کنم در مورد این قیاس ابن کلوب یا کلوب شیخ رحمه الله در کتاب عده می فرموند طائفه به روایاتو عمل کردن لذا مورد اعتماده خب حضرت آقا می اگه این روایت معارض نداشت همین مقدار برای ما کفایت میکرد اما چون این روایت معارض داره و معارضش هم یک روایت صحیح هست ما اینجا نمیتونیم عمل کنیم پس روایاتی که مبسقه به توصیق آن باشن اگر معارز جدی داشته باشن پذیرفته نمیشن مبنای صرفم ادم اعتبار روایات معتبر به عمل اصحاب در صورت وجود باز از میخوام این رو من چیز کنم در صورت تنافی با قواعد این چون تنافی با قواعد داره چون اینجا میفرماونن که این روایت چی میگه میگه که ان الرجلن قتل امراا فلم یجعل الیون بینهما قصاصا حذر قصاص قرار ندادن الزم هدیه آیه خوب اینا این خلاف قاعده است چون این روایت خلاف قاعده هست، پس با توثیق عام نمیشه درستش کرد حالا من با بعدش اشتباه کردم عدم اعتبار روایات معتبر به عمل اصحاب در صورتی که تعارض وجود داشته باشه خب میدونید آیا عمل اصحاب جابر ضعف سند هست یا نیست خب من رو های خوی میفرماند که نه در واقع عمل اصحاب جابر ضعف سند نیست حضرت آقا جزء اون کسانی هستند که عمل اصحاب رو جابر ضعف سند میدونن اما میفرمایند این در صورتیه که روایت معارض وجود نداشته باشه اگر روایات معارض اینجا وجود داشته باشه ما نمیپذیریم حالا مثالشم که ارز کنم خدمت شما که همین روایت هستش خب. چهارمین مبنا لزوم وسوق نوعی برای تمسک به روایت این همه است که از آقا توی بحث خبر واحد دارن میفرمان که اگر به یک روایتی بخوایم به یک خبر واحدی بخوایم تمسک بکنیم باید و سوقی نوعی وجود داشته باشه به اون روایت و الا نمیتونیم عمل بکنیم مثالش چی هستش ببین بله اجازه این مثالش رو با این بار خب با اون نمونه این روایت روایت جالبی از. هست اتفاقا تو این قانون مجازات سابق قبل از سال 1992 این اتفاقا به عنوان یکی از مواد حقوقی قانون مجازات اسلامی ما بود جریان چی هستش؟ دو نفر عرض کنم خدمتش یعنی دو نفر میان شهاد، شهادت میدن که شخصی شخص دیگر رو به قطر سونده قطر بکن خیلی جالب ارز فکر کنم ماده 263 بود اگه اشتباه نکنم 263 قانون مجازات در واقع سابق بود قبل از سال 92 که تو این قانون مجازات اسلامی جدید رو برداشتن میگه دو نفر میان شهادت میدن که یک شخصی کسی رو کشته بعد یه نفر میاد شهاد در واقع اقرار میکنه میگه نه این نکشته مثلا زید نبوده من بودم و اون شخص زیدم قبول میکنه میگه راست میگه این کشته اینجا حضرت میفرمان که روزشم هست حضرت تعمیر این در واقع جریان رو ارجا میدن به امام حسن علیه السلام امام حسن که هر دو ای اینها بری هستن تبعی میشن برات جالب میشه و در واقع دیش از بیت المال باید پرداخت بشه البته تو قانون مجازات اسلامی آورده بود در صورتی که قاضی در واقع زن پیدا نکنه که اینا با هم توافق کردن چون اگه اینجوری باشه خیلی راحت دیگه میون با هم دو نفر توافق میکنن اولی میره میذاره میکشه دو نفر میان شهادت میدن نفر دوم میاد میگه من بودم اونم قبول میکنه تموم شد این دوتا تبرعه میشن و دیش از بیتون مال پرداخت میشه حضرت آقا میفرماین چون در واقع ملاک عمل به روایت وسوق و وقتی یک روایت در موارد متعدد با قواعد کلی مخالفت داشته باشه این موجب سلز وسوق میشه چون میده این روایت از جهات متعدده سازگاری نداره اینکه خب بالاخره قتل بین این دو نفره دیگه حالا یا این کشته یا اون کشته دیگه اینکه دو نفر تبرعه بشن دیش هم از بیتول مال پرداخت بشه خب این خلاف قاعده است لذا میکرد چون از موارد مختلف خلاف قاعده است لذا وسوق نوعی به این روایت پیدا نمیشه لذا ما نمیپذین ولو که سند روایت هم سند صحیحی باشه حالا من یادم اون موقع نگاه میکردم این مسئله رو تو مجمع الفاعدت والبرهان نگاه کردم مرحومه محقق قردویلی میگه این قضیه فی واقعه تازه اگر هم بخوایم بپذیریم چه میدونیم چه اتفاق رفتاده لاباد نموحسن مشتبه علیه السلام قرائنی داشته که حکم کرده این که ما این رو به عنوان قاعده کلی بپذیریم بعد هم اینطوری کنه بیاد توی قانون مجازات اسلامی ما نه اینجوری نیست اما مورد پنجم عدم اعتبار خبر واحده حدسی هستش ایشون می خبر واحدی که انحسن باشه حجته نه خبر واحدی که انحدسن باشد بله میگه بله ایشون میگه بله اگر اخبار اخبار از امر حدسی مستند به قرائن حسی باشه اونجا ما میپذیریم ولی اگر تو اخبار از در واقع یک خبری اون ملاک و معیار حدس باشه ما نمیپذیریم مثالی که ایشون میزنن اونجایی که حدسی است اما در واقع منشأ حسی داره مثلا شجاعت را مثال میزنن میگن ببینید شجاعت امر حسی که نیستش که امر حدسی مونتا تو عالم خارج قرائنی داره مثلا زید اگر بدون هیچ مثلا تردیدی وارد میدون بشه بجنگه فرار نکنه پشت نکنه به دشمن قوی خب نشون میده آدم چاستش شجای هستش میگه اگر خبر از شجاعت زید بدن ولو این این حسی نیست حدسیه اما این مستند به یک قرائنه که اگه اون قرائن هم به دست ما برسه طبیعتاً ما هم شجاعت زید رو تصدیق میکنیم پس جنبندیش چی میشه؟ جنبندیش اینه که اگر بخواد یک روایتی ارز کنم خدمت شما که حجیت شما بپذیریم این اخبارش باید اخبار انحسن باشه نه حدس اما شیشومین مبنای که ایشون در واقع توی در واقع نکته مهمی که توی حجیت خبر واحد دارن میفرمایند که عدم حجیت حدس بزرگان حدیثی در مورد اعتبار حدیث است که ایشون میفرمایند که در مجبو میفرمایند که مثلا نمونه عباراتشون من تو کتاب القساص صفحه 142 بیارم ایشون میگه پس از این که مرحوم صاحب جلیه قضیه مفصلیه چون ما مطالبه زیادی داریم که با هم رد و بدل بکنیم من از ابتداش نمی‌کنم یعنی یه روایتی بودن عن بن سالم حبیب سجستانی حالا بسره عرض کنم خدمت شما این حبیب هست حبیب سجستانی هستش که در واقع یه دمدن این رو یه دست متأخرین اومدن این رو توصیلش کردن اینشون در مجموعه که پس از اینکه مرحوم پس اینکه مرحوم صاحب جواهر و بعضی دیگر میگویان چون علمای بزرگی گفته‌اند این روایت صحیح هست پس سعیه میباشد این نیست صرفه که آون حدس چون حزته حالا می رسیم جلوتر در واقع توسید رجالیون متاخر و اجتهادی میدونن میگه اینا حسی نیست اینا اجتهادی فهم خودشون لذا برای ما اعتبار نداره ایشون چون یه نفر آره بگه چون علمای بزرگی مثلا کیا گفتن عرض کنم خدمت شما که جناب فخر المحققین ابن فهد فهد هلیه اومدان از این روایت با اینکه حبیبش سجستانی درش هست گفتن این صحیح هست حالا یه عده میگن چون این بزرگان بزرگان متأخرین چون متقدمین رجالون متقدمی که حرفشون سنته میگه حالا این که بزرگان اومدن گفتن این روایت سیاس ما میتونیم بگیم سیاس میفار نه اینطور نیست به احتمال زیاد نظر آنان به نظر شقیف علامه برمیگرم چون علامه همون رو کرده توصیح کرده و علامه هم در این مسئله برخلاف اصطلاح خود زده پس شهادت آنان به صحت مورد اعتماد ما نیست و چون حبیب سجستانی توصیق نشده در نتیجه صحت روایتش معلوم نیست این ششتا نکته بود در ارتباط با مبانی حضرت آقا در ارتباط با حجیت خبر واحد آقا خبر واه تو حجت میدونه با بود بله. البته خیلی از این حرفا نه اینکه آقا منحصرا فرموده باشن، اون دیگه هم این مبدونه. دا ما داریم مبانی از آقا رو چک میکنیم. عرض کنم خدمت شما که اما یه سری قرائن اطمینان اطمینان بخش وجود داره که اینها رو آقا به عنوان قرینه صدور روایت میگیرن. یکی از اون قران قرائن استفازه است البته آقا دو سه جور تعریف دارن از استفازه که حالا ما فرصت نداریم اون دو سه جور رو عرض بکنیم از کرده انشالله خدا مدد یه بحث تفصیلی انشالله بتونیم سال آینده چاپ بکنیم انشالله همه اون مباحث رو به تفصیل ما تو اون کتاب انشالله خدمتون ارائه خواهیم داد به عنوان نمونه من نمونش آبادم به عنوان نم... نمونه حضرت آقا تو کتاب همین درسنامه قنا که چاپ شده در مورد روایاتی که ذیل وجتن قول از زور اومده میفرمایند روایات ذیل این آیه روایات مستفیزه است یعنی اگر صحیح و سندی هم در بین این روایات نباشه تکرار این نقل از حضرت صادق برای انسان اطمینان و یقین عادی میاره که این از حضرت صادق ساده شده لذا بعدش رو بطنن استفازه به این معناست. است اتعرض کردم جه دیگه استفاده در طوری دیگه معنا میکنن که حالا الان فرصتش نیست پس یکی از اون قرائنی که حضرت آقا میفانند موجه اطمینان اتمینان به صدور رو باید میشه استفازه است اما دقت بکنید حالا نمیدونم تو این پاور آوردم این نکتر رو جلوتر یا نه حالا یادم رفت آخه آقا تو این روایاتی که با استفاضه با قرائن اثبات میشه جزئیاتش رو مد نظر نمیگیره مثلا یه روایاتی مثلا 5 تا ده تا رو باید میاد یه مضمونی رو داره میگه های مختلفو داره کم و زیاد هم داره ایشون اصل معنا رو با استفاضه میپذیره میگه این روایت ساده شده اصل این مضمون اما تو جزئیاتش اگر یه خبر خبر ضعیف باشه تو جزئیات اعتماد نمیکنه این دقت رو داشته باش این کارو هم ارز می‌کنیم، این نکته کلی وجود داره ارزم مشخص شد چی میگم؟ آره <تصفيق> یه بار دیگه تکرار بکنم ایشون ببینید مثلا فرض کنین 5 تا ده تا روایت اومده داره یه مضمونی رو میگه به بیانهای مختلف هر کدوم هم ریزه کاری داره اما همشون داره یه مضمونی رو میگه مثلا میگه قناه حرام هست فرض کن آقا میفرماند ولی تو اینها حتی یه روایت صحیح و سند هم نباشه اما به دلیل استفاضه ما اصل معنا رو میگیریم اما دیگه تو جزئیات قابل استناد نیست مثلا پس یکی از این روایت یه جزئیاتی رو گفته که تو های دیگه نیست میتونیم استناد کنیم به این روایت بگیم این جزئیات پوش آقا میگه ندید تو جزئیات نمیشه استناد کرد قرینه دوم شهرت روایته شهرت توی روایت در دو معناب کار یکی شهرت روایی که شهرت عمل در مورد شهرت روایی حضرت آقا شهرت روایی رو موجب اطمینان صدور روایت میدونه کجا؟ مثلا تو سند روایت عربمه یه روایتیه که حضرت توی متحصد امیر علیه السلام توی مجلسی 400 تا مطلب رو میگن میفرمون می که معروف شده به روایت عربمه اشون میفرموان البته چون خود خود این حدیث از احادیث معروف است لذا خیلی سند ضعیف در واقع سند ضعیف یعنی اون ضعف سند تأثیری نمیگذاره چون در واقع شهرت روایی داره ولی اینکه سند سند ضعیفی زعیف هست ما چیکار میکنیم کنیم میپذیریم شهرت عملی چی ایشون ارز کردم شهرت عملی رو جابر ضعف سند میدونه برخلاف آقای خویی که میفرمان این جابر ضعف سند نیست میدونه ملاک آقای خویی ندیگه آقای خویی بین اعتبار در حجیت و عدم حجیت واسطه قبول نداره سفر و یکی میدونه اما خصوصا مکتب قوم می ممکنه یه چیزی حجیت نداشته باشه اما این به معنای عدم اعتبار نیست ممکن همین چیزهایی که به تنهایی حجیت ندارن وقتی کنار همدیگه قرار بگیرن در اثر تراکن زنون زون، یه اطمینانی برای ما در واقع ایجاد بکنن این تفاوت بین مکتب آقای خویی که حالا مکتب نجر و مکتب قوم هستش نزایشون میگه چون شهرت عملی صفر هیچ اعتباری نداره خودش وقتی اعتبار نداره نمیتونه به چیز دیگه ای اعتبار بده اما خب آقای این رو نمیگن این تو خصوصا تو مکتب قوم میگن این که حجیت ندارد به معنی عدم اعتبار نیست لذا حضرت آقا از جمله فقهایی که شخرت رو شخرت عملی رو جابر زرف سند میدونه مثالش کجاست؟ ببینید تو بحث سابعی این کتاب ی کتابی چاپ شده رسائل سلاسل آقا به زبان عربی است اگر ببینید اونجا بحث سابعین رو بر اینجاست اینجاست بر تو بحث سابعین رو اونجا حضرت آقا مطرح می‌کنن اونجا تو بحث حکم سابعین وقتی یه دسته از روایت رو که حضرت آقا ذکر میکنن که همه از لحاظ سندی در واقع ضعیف هستن اینشون این رو می‌فهمن می‌فهمن ضعف سند این روا... روا... روایات ضرر ندارد. بعد از آن که می‌دانیم اصحاب ما مزامین این روایات رو تلقیه به قبول کردن و بهش عمل کردن من مخصوصا این عبارات رو هم خدمت رو می خونم که کاملا مستند باشه پس ببینید حضرت آقا شهرت عملی رو جابره ضعف سند می دونن. از جمله قرائن دیگه ذکر روایت در کتاب یا اصل معتبر هستش حالا که فرق کتاب و اصل رو طبیعتا شما خوندید تور اصل رو میگن اون در واقع نگاشته حدیثی هستش که مستقیمن از معصوم گرفته شده یعنی از کتاب دیگه گرفته نشده یا راوی از راوی دیگه نشیده. کتاب در واقع با باسده هستش دیگه وقتی میگن کتاب فلانی یعنی و از اون راوی رفته یک حدیث رو از راوی دیگه گرفته یا از کتاب کسی دیگه داره نقل میکنه ببینید حضرت آقا معتقدن که اگر یک روایتی تو مسادر اصلی ما در روام نقل شده باشه این تأثیر خیلی زیادی داره تو پذیرش اون روایت درست شد؟ به عنوان نمونه من خدمت شما عرض بکنم ببینید درمود سحل ابن زیاد حالا من اینجا نوشتم توضیح هم داره خیلی خلاصه نوشتم علا رقم اعتقاد به زعف سحل ابن زیاد ایشان بر این باور است که روایت سح در کتاب کافی قابل اعتماد است من اینو توضیح بدم ببین سحل ابن زیاد میدونین از غبات پرکار ما هستش یعنی کسی رو روایه هستش بیش از 2500 تا در واقع روایت داره یعنی در اسناد بیش از 2500 تا روایت جناب سحل ابن زیاد هستش میدونید دیگه خب تضعیف هم شده تضعیفش هم یه مشکلی داره یعنی هم متهم به نجاشی هم اون رو متهم به قلاف کرده هم متهم به کس خیلی از این رواتی رو که متهم به قلوب شدن متأخرین درستش میکنن میگن این قلوبی که آین قومیم اون زمان میگفتن با این قلوبی که ما مدن نظرمون هست تفاوت داره. چون میدوند اون زمان تو اون مکتب قوم کسی رو که قائل به اسمت عین من بوده قالی میدونستن ازا اکثر کسانی که متهمه به قلوب شدن ما میگیم این قلوبی که بهشون استاند دادن متهمشون کردن این خیلی اعتبار نداره اما در مورد سهل افن زیاد یه مشکل دیه ما داریم که متهم به کذب شده اونم کی متهمش کرده نجاشی چون آقا به نجاشی خیلی اهمیت میدن حالا جلوتر بریم خب ایشون خود سهل رو قبول ندارن میدون خب خیلی از متأخرین الان در واقع توصیق میکنن سهل رو با همون بحث اکثار اون مبنای اکسار سقه درست میکنن اما آقا حضرت آقا وساقت سحر رو قبول ندارن تأکیدم میکنن میگن وقتی نجاشی که خریت فن هست میاد هم ایشون رو متهم میکنه به قلوف و هم متهم به کس میکنه بعد خودشونم توضیح میدم که حالا قلوف رو ما میگذاریم. اون قلوف خیلی مهم نیست اما متهم به کس کرده ما نمیتونیم قالب توصیق سهل بشین. اما همین صح حضرت آقا که تو بختی توی کلینی ازش نقل میکنه میگه ما روایتشون پذیری. چرا؟ چون اینجوری میفهمم حضرت آقا میگه با کلینی که خودش خلاصه اونم خرید فنده دیگه کلینی ازبت دیگه وقتی کلینی یک روایتی رو میاد از صح نقل میکنه یعنی اعتبارش رو پذیرفته ایشون میگه جمع،, جمع بین نجاشی که خریت بحث رجال هست و این اینور مرحوم کلینی حدیث شناس بزرگ ما اون میگه کذاب مرحوم کلینی تو کافی میاره ایشون میگه جمعش اینه که ما اون روایاتی رو که صحر توی کافی دارن رو میپذیریم نه اینکه همه روایات صح رو بپذیریم اون روایاتی رو که ایشون توی کافی آورده ما میپذیریم به خاطر اعتمادی که به کی داریم به کل اینی داریم. نه فیلان بخواد دمتو سهل درست شد ما داریم الان آقاینی که الان تو قوم معتقدند تمام روایت کافی صحیح است. اصلا بررسی نمیکن از دقا بله ولی آقا ببینید مکتب کلیشون تو رجال اصالت و تصحیحیه یعنی به دنبال این هست که تا حد امکان خلاصه روایت ها رو تو سبد و جیت بندازه ولی خب این به این معنیست به همه روایت ها رو بپذیره قرینه سپم ذکر برای این قرینه سپم بود خدمتون ارز کردیم قرینه چهارم عظمت مطالب مطرح شده تو روایت اگه یه روایتی درش مطالب عظ ذکر شده باشه مطالبی که خلاصه عیار بالایی داره ولی سند سند زعیفی باشه آقا میگه ما میپذیریم عبارت آقا رو نگاه کنید ایشون تو همون کتاب قناموسیقی بعد از ذکر زعف سندیه یه روایت اینطور میگه حقا این چنین چیزهایی یعنی اشکالاتی که دارن میکنن یا زعف رواد موجب نمیشه که این حدیث این حدیث با این عظمت و این مفسری رو بگویم کسی جعل کرده اینو این خیلی مستبعده است بنابراین اطمینان به سند هست درست شد کما که عرض بستم تو اول کتاب مکاسب هم داریم دیگه اون رو بعد تو احوال عقول تقریبا دیدید دیگه این اختلاف وجود داره که آقا این روایت خب سند که مرسله است صحت نداره یادت میگن این مطالب عظمتی دارد که معلوم میکنه این روایت از معصوم ساده شده چون این نحوه تقسیم بندی از غیر معصوم ممکن نیست. مثلا میگه آی آخوی بر عکس همینا نسبت به همین متن میگه میگه نه اصلا این به هم ریخته اصلا میدونم این, این نمیشه متن معصوم باشه. حالا دیگه اون که این مد عظمت داره یا نداره ند اون دیگه شعبه مستاقی بعد بلخ ببینیم هر کسی آینو با عظمت میدونه یا نمیدونه. و مهمترین قرینه همون وساقت راویان حدیث هست در نگاه عزت آقا مهمترین میاره که توی اعتبار سنجی روایات تأثیر خیلی فراوان داره احراز وساقت راویان هست که خب اینم از ره توصیقات خاص و توصیقات آم مطرح میشه که ما از اینجا وارد بحث توصیقات آم و توصیقات خاص میشه یعنی عزت آقا الابه برین که به متن هم میادیدن و اون نکاتی رو که خدمتون از کردیم به سند و و صحابت غبات هم خیلی اهمیت میدن درست شد خب تیه تقسیم بندی میدونید دیگه توصیقات دو دسته میشن توصیقات آن و توصیقات خاص توصیقات خاص کدوم توصیقات بودن توصیقاتی که در مورد یه شخص خاص یا یک مجموعه خاص ایراد شده باشه و شامل کس دیگه نشه که توصیقات خاصی که ما توی عبارات حضرت آقا پیدا کردیم میدونی این توصیقات آن توصیقات خاص تعدادش بیشتره منطور ما چون بحثمون مبانی رجالی و فقه الحدیثی حضرت آقاست اونایی که تو کلام حضرت آقا آورده رو داریم بررسی میکنیم اونایی که تو کلام حضرت آقا آمده که توصیق محصوم توصیقات خاص یکی توصیق رجالیون متقدمه یکی توصیق رجالیون متأخر، که حالا این را را بررسی میکنیم اعتبارش رو اجماع بر توصیق و استفاده از مجموعه قرائن هست که توی کلام حضرت آقا آمده در مورد توصیق معصوم خب حضرت آقا قبول دارن که میگن این توصیق خاص یا احراز وجدانی میخواد که خب زمان معصوم بوده مومی بینیم که ازت صادق علیه السلام مثلا زوراوره رو ابو ابن تقلب رو مثلا چطور میکنن توثیق میکنن خب اون که الان برای ما ممکن نیست راه دوم احراز به واسطه روایات که میبینید این رجال کشی یک منبع خیلی خوبی است تو این زمینه اون که میبینید مبنا یا رجال کشی توثیق و تضعیف از روی روایات است هرچند اعتبار کتاب رو بعضیا خاتمه میگم لو از آقای اطباس قبول دارال بن عرض میکنم خدمتون منتها ایشون میگن دو شرط داره اگر شما خواستید از طریق روایت روایت وساقت یک راوی رو به دست بیارید دو تا شرط داره شرط اول این که راوی که توصیق معصومین رو نقل میکنه باید غیر از کسی باشه که در صدر اثبات توثیقش هستیم این اگر دیدیم ظاهرا حضرت امام اگه اشتباه نکنم میفرمان اگر دیدید یه راوی خودش روایت آورده در توصیق خودش ما بیشتر شک میکنی. آی آیسوکونی هم میگه. امامم فکر کنم میفرما میفرمان. شرط دومش چیه؟ پس توصیق توسط فرد ای باشه. اگر کسی خودش بیاد بگه بله امام صادق در مورد من یه همچین بیاناتی داشتن ما بیشتر شک می‌کنیم. کما که روایات روایت عایشه رو علامه عسکری همون می میگه تو کتاب نقش دلهای در, در اسلام میگه تمام این روایت‌های مدح ناقلش خودش ناقلش خودش لیزا ما شک میکنه درست شد شرد دومینه که روایتی که وساقت اون راوی رو اثبات میکنه باید اعتبارش از طریق دیگهی چی شده باشه اثبات شده باشه که اینم طبیعی هستش دیگه این توصیقه عرض کنم خدمت شما خاص اما توصیقات رجالیونه متقدم که یکی دیگر از توصیقات خاص هستند. خب رجالی اونو متقدم میدونه دیگه نجاشی و شیخ توسی و کشی و قضایری یا ابن القزائری هست دیگه حالا در واقع اون کتاب اون کتاب رجالی در واقع اختلاف وجود داره که برای پدر یا برای پسر است. الاته بعضی میگن برای هیچ کدوم شد دیگه میگن اینو در واقع مخالفین ساختن یا الو بحثشو میدونید دیگه انقدر این تند ابن القضائری یا قضائری و جر میکنه به سلا روبات شیعه را رو که میگن اصلا این کار مخالفینه اینو ساختن برای در واقع جر و از اعتبار انداختن روبات شیعه ش... نجا خب این تقریبا تسالم وجود داره دیگه در مورد سه نفرشون تسالم وجود داره در مورد قضایری خب اختلاف وجود داره نجاشی رو کش در نجاشی رو کشی خب این حضرت آقای وزکشی میکنن حتی آقا نوعا همین کار رو میکنن دیگه من ببینید شیخ توسیه چون شیخ خود بوده دیگه فیق، اصول، تفسیر، کلام تو علوم مختلف ایشون تبهر داشت و کتاب داره لذایشون میفرمند ایشون شیخ خود تایفه است سرامده در فقه اما آیا سرامده در رجالم هم هست ایشون میگن نه توی وزکشی بین نجاشی و شیخ طبیعتا نجاشی چون متمحزه توی رجال بوده لذا ایشون نجاشی رو بالاتر میدونن لذا اگر یه جایی تعارض بین کلام شیخ توسی و جناب نجاشی ایجاد بشه ایشون نجاشی رو در واقع مقدم میدونن به خاطر تمحخزشون به حاطر تمحوظ نجاشی حالا یه صحبتی ایشون دوی هشته هشته تو فیضیه داشتن که من عبارتش رو اینجا آوردم در مورد کشی چی؟ ایشون کشی رو میپذید در مورد کشی اعتبار که دامش اختلاف وجود داره میدونین اما ایشون توی همون بحث مکاسب محرمهشون جلسه 150 پنجام میفرماین که بله وقتی در این قضیه سراغ اهل خبره مثل کشی، نجاشی، شیخ و دیگران را ب... شهادت آنها را بر توصیق علی ابن عبی حمزه اون بتاعنی هست نداریم از این عبارت مشخص میشه که ایشون کشی رو قولش را چی میدونن معتبر می, می اما در مورد ابن القذاری من جلوتر خدمتون عرض می کنم ایشون حالا به تفصیل میگم قبول ندارن در واقع قزائری یا ابن القزائری حالا هرکدوم از اینا قبول ندارن تضیفاتشون جلوتر عرض میکنم کشیه مؤخر شیخی هست دردا چیه کشیه مؤخر شیخ ابن ندارم مو اختیار خلاصش کتاب برای کشیه ایب نداره ایب نداره ما ما در واقع ولی که از فیلتر جناب شیخ رد ولی ما این کتاب الان منتسب به کی میدونیم کشیه میدونیم دیگه اما توصیق رجالیون متاخر چی؟ ارز کردم حضرت آقا توصیق رجالیون متاخر رو قبول ندارم میدونید از بعد از شیخ توصیر رو ما میگیم رجالیون متاخر درست شد ایشون میفرمن نه میفرمن چون توصیقات اینها ناشی از اشتحادشون هست لذا اعتبار نداره درست شد یا اینا توصیقاتشون در واقع این علمای متأخر خودشون که به صورت حسی ندیدن که توصیقات اونا چون ان اشتهاد هست و منابعشون همون رجالیون متقدم هست و اونا با ما فرقی ندارن همونطور که اونا میتونن اشتهاد بکنن ما میتونیم اشتهاد بکنیم. دو جا، حتی زیاد است. من اینجا دو جا آوردم کتاب قصاص صفحه جلسه 327 و جزء 142 درست شد مثلا ببین عبارت رو بخونم میگه مرحوم وحید بهبهانی که به تعبیر صاحب جواهر متبهر در علم حدیث و رجال بودند نقل کردند که جدشان یعنی مجلسی اول حبیب سجستانی را توصیق نمودهند ایشون میفرهم ولی توصیق متأخرین از این از این قبیل در مورد اعتماد به روایت کافی نیست از کردن جایی دیگه علت رو می فرموند چون اینا مستندشون چیه همون رجالیون متأخر هستن منابشون چون توصیقات اینا که انحسه نیست ان اشتهاده نه. لذا اونا با ما خیلی فرق ندارن از این جهت اما برخی از مبانی ازت آقا در مورد توصیقات و تضعیفات رجالیون چون بر از کردیم در واقع رجالیون یکی از توصیقات خاص ما توصیق و تزعیف رجالیون متقدم و متاخر هست که حالا متقدم روشون میپذیرن غیر از ابن القزاری رو اما متاخرین رو نمیپذیرن حالا یه سری نکاتی تو این زمینه وجود داره که خدمتون عرض می کنیم. نکته اول چیه در مورد توصیقات و تزعیفات ابن القزاری. ایشون میفرماین ابن القزاری در زمینه توصیق بسیار سخت گیران عمل کردن و در بساقت بسیاری از کسانی که دیگران قائل به بساقتشون هستند خدشه کردند. به همین دلیل ما به تضعیفات ابن القظاهری توجه نمی کنیم و اعتماد نمی کنیم چیه؟ مثلا در مورد قاسم ابن که ابن قزائری تضییف کرده از اطاغا چی میفرمان میفرمان البته قزائری هم ایشان را تضییف کرده ولی ما به تضییفات قزائری خیلی اعتماد نمی کنیم از اون طرف میفرمان اگر توصیق کرد چی؟ حالا تضییفش رو نمیپذیریم توصیقش رو چی؟ ایشون میفرمان چون این آدم خیلی آدم سختگیریه اگر یه نفر از فیلتر این رد شد و خلاصه توصیق شد این یک قرائن بسیار خوبی بر به ساقت هستش پس ما تضعیفش رو نمیپذیریم. اما توصیفش یه قرینه خوبه چرا میگم قرینه خوب چون تو یه جای دیگه ازتا آقا میگن دوباره حتی اگر این توصیق با توصیق نجاشی و شیخ توصیق تعارض کنه حرف نجاشی و شیخ توصیق مقدم پس در کلیشون رو ضعیف میتونن درست شد تذکراتش رو اصلا قبول نمیکنم. در مورد توصیقاتش در صورتی که تعارض با سایر ائمه رجالی نداشته باشه، در حد قرین قرینه خود ایشون می‌پذیرن. خب. این در دوم توصیحات نجاشی است. عرض کردم خدمتتون خدمتون ایشون توی جایی میفرمایند یه خطایی رو تو کلمات شیخ توسی نقل میکنن. بعد میفرمایند که البته به خاطر اشتقالات زیادی که مرحوم شیخ داشتند و به علاوه تبخور ایشان در علوم مختلف فقه و تفسیر و حدیث و کلام و رجال که نشان نشان عظمت علمی ایشون هست و لذا به شیخ و ملقب شده است، از این گونه اشتباهات در آثار ایشان ایده مشاع گزاو قول نجاشی را در موارد اختلاف بین نظر ایشان و شیخ در موارد جر و تعدیل لجار ما چیکار میکنیم نظر نجاشی رو ترجیح میدیم البته ببینید این کتاب چهار کتاب اصلی علم رجالشون قبل از انقلاب نوشتن ایشون اونجا کلیت این حرف رو نمیپذیرن یعنی اینکه در همه موارد به صورت یک اصل کلی چشبسته ما بیایم هر جا اختلاف وجود داشت نجاشی رو مقدم بکنیم ایشون میگن نه ایشون میگن با این حال در موارد اختلاف میان شیخ و نجاشی همیشه نمیتوان به تقدم سخن نجاشی حکم بلکه حاکم نهایی در قالب موارد قرائن و امارات خارجی است. این کلام قبل از اون کلام دیگه درست شد شادم نسخ نشده چون این حرفی که تو این کتاب هست به نظر میاد که حرف درستی باشه ما درست نجاشی خیلی تفنه درست دقیق تر از شیخه اما ما میتونیم چشبست همه جا تا اختلاف پیش ما در جا نجاشی رو مقدم بکنیم به نظر میاد که میتونیم ما تو ذهن بیانیم که بالاخره نجاشی دقیق تره ولی باید قراره این رو هم ببینیم دیگه نمیشه دیگه. چون ایشون بالاخره متوحر بوده متمهز بوده پس در همه موارد از شیخ برتر هست تو موارد اختلاف قولش مقدم میشه به نظرم یاد این حرف حرف دقیق تری باشه آره یه تفکیکی کردم و و یکیش یه هم داره حالا ما تو این چیز آوردیم پیشاش هست درست شد ولی در اصلش من دارم عرض می کنم اصلش رو در واقع یه جاییشون ایشون میفرمن ایشون به صلو مقدم میشه نجاشی ولی تو اون چهار کتاب چهار کتاب اصلی علم رجال ایشون میگن بعد قرائن خارجی رو هم نگاه کن یعنی اصل این که تبخور نجاشی بیشتره رو می پذیرن این با این حال یعنی اول اثبات میکنم میفرمند که نجاشی بالاتره ولی با این حال تو تعالوزت ما در همه موارد نمیتونیم بگیم نجاشی قولش مقدمه حالا این دیگه من نظر خودم عرض کردم حالا شما دیگه طبق برداشتون از این دوتا عبارت هر جوری که تشکیس میدید عمل بکنیم اما نکته بعدی بحث ترزی هستش آیا ترزی و ترخم ترزی یعنی رضی الله و انح مثلا یک بزرگی یک رجالی یک راوی رو میگه بعدش میگه رضی الله هم یا ترخم رحمه الله آیا این دلالت بر وثاقت میکنه یا نمیکنه ایشون میفهند دلالت بر وثاقت نمیکنه چون میدونی اینا اختلافیه دیگه بعضی همین ترضی و ترحم رو جزد قرائن بساقت میکنه ایشون میگن نه یعنی این نشون میده که این در واقع در واقع و نشانه های میگیره. حضرت آقا می نه. درد بروساقت نمیکنه. میفهمن البته ما ترزی را دلیل بر وثوق نمی دانیم. لکن بسیاری از بزرگان ترزی صدوق را دلیل بر وثاقت دونستان که ایشون میگه نه. ما دلیل بر وثاقت نمی دونیم. حتی یه جای دیگه میفرمایند که معلوم است حتی این آدم آدمت خیلی مثلا علیه السلامی هم باشه البته به ممکن است ترزی و ترخون دلیل بر مد و شیعه بودن باشه یه جاهایی اما به صورت قرینه کلی این دراد بر وساقت بکنه نه واقفی بودن چی؟ این هم نکته بسیار مهمیه دیگه واقفیه رو بالاخره می دیگه اینا عرض کنم اصحاب. موس ابن جعفر بودن که بعد از شهادت حضرت وقف کردن و گفتن دیگه امام بعدی وجود نداره ندارو خلاصه پولا رو بالا کشیدن دیگه یه پول عظیمی دسته اینها بود سرانشون مثل این عثمان بن عیسا علی بن ابی حمزه بطاینی و اینها زیاد قندی و مروان زیاد قندی و اینها وانا پولا رو بالا کشیدن حالا از طرفی میدونید این جریان و خیلی گسترده شد خیلی از شیعیان واقفی شدن که اگر ما بخوایم این قرینه واقفی بودن و دلات بر زفت بگیریم تعداد زیادی از روایات ما از دامنه حجیت چی میشن خارج میشن واقعا مشکلی بوده ها ارز کنم ببینید ایشون نه واقفی بودن رو با وساقت قابل جمع میدونن کلامیشون رو نگاه کنید در مورد عثمان عیسی که از رؤوس واقفی است از رؤوس واقفی است. ایشون چی میفرماین؟ میفرماین خبس او منافاتی با وساقت او ندارد بلاخره تو شده است. وقتی که کسی بعد از مثلا 100 سال بعد از زمان عثمان ابن عیسی که واقفی هم شده و همان کارهای غلط رو هم کرده می آید و در این حال می گوید سقه نمی شود گفت این وساقت مربوط به دوران قبل از انحرافش هست. چون بعضی زینا رو علموی رجالی ما توصیح کردن. حالا بعضی برای حل این مسئله میگن آقا این توصیح مربوطه به قبل از انحرافش. شون می نه بابا اینه با, اینا با سال بعد اومده داره میگه گه سقه. یعنی توجه نداشته این قبل از انحراف بود یا بعد از انحراف. بلاخره بعضی از آدم ها بله اینشون بله بلاخره بعضی آدم ها آدم های بدی هم هستن مثلا شرابخار هستن اما راسکویان آدم هایی هستن که اگر چیزی را از کسی نقل کردن انسان به این حرف اعتماد پیدا لذا ایشون واقفی بودن رو ارز کنم خدمت شما که با وساقت قابل جمع میدونن. بعد تحلیل های چیزی هم هستا یعنی یکی از اساتید ما تحلیل قشنگی می‌داد میگفت آقا بابا اون زمان مثل الان که نبوده شما فکر کنید موسی بن که توی زندان بوده عمده حالا اون نقری مثلا 14 سال تو زندان بوده مردمم با این به نوابشون نماینده هاشون سر کار داشتن بعد این ابی علی بن عبی حمزه بتائینی و اینها اینا جفت بزرگان شیعه بودن امین امام بودن جانشین امام بودن خب اینا به مردم میآمدن میگفتن که آقا امام دیگه نیست امام بعدی نیست وقف بر مصن جووان رو خیلی از مردم امر برشون مشتبه میشد یا نمیفهمیدن نمیتونستان تشخیص بدن به صرف اینکه حالا و خیلی از اینا برگشتن حتی آقای صبحانی داره حالا کتابش بکنم نبود. زمان من اول طلبگی صوتشون رو گوش میدادم حتی کشی داره اینا دو نوع روایت وجود داره بعضی میگن که امام فرمودن که سر قبرش فهمدن که اون ملک عذاب اومد گفت امام بعد چیه نتونست جواب بده با گرز آهنی زد و توی سرش و قبر پر از آتش شد یه نقل هست در مورد همین علی ابن نبی هم زبت یه نقل هم هست که نصلا توبه کرد رو پس داد و خیلی از این شیعیانم یه مدتی وقت کردن بعد که امر مشخص شد خود <تصفيق> اومدم سراغ امام بعدی دیگه لذا به صرف واقفی بودن نمیتونید شما در واقع کسی رو تضعیفش بکنی نکته پنجم نسبت قلاف به راویان هست که اینا در ضمن ارائزم خدمتون گفتم هست آقا که مجرد نسبت قلاف به یک راوی موجب عدم وساقت یا زعف راوی نمیشه همونطور که اشون تو همون کتاب درسنامه قناه موسیقی برای اثبات ها عدم وساقت عبدالله بن قاسم رو مجرد نسبت وی رو که نجاشی بهش در واقع نسبت داده رو کافی نمیتونن یه این که نجاشی اومده گفته عبدالله بن قاسم واقفیه این صرف نسبت دادن وقت که باید نمی کنه علتشم خدمتون عرض کردم ایشون می که ببشه قلوب عرض کنم ایشون همونجا هم ذکر می کنه دیگه میگه آقا این نسبت قلوب در واقع چون این تعریفی که اونا از غلوف داشتن با تعریفی که ما از غلوف داریم متفاوته لذا اون نسبت غلوف رو ما عامل زرف نمیدانیم خب یه سلبان محمد بفرمایید آبی اگه بر ما بیارید خوب یه آب اگه بر ما بیارید خوب دست شما در حضرت بودن یا بودن مفصله مفصله آره بله آره بعضیشون رو بعضیشون نگفتن دقت میکنین یه علاقه منادگیری میشه کرد، وقتی واقفی بودن رو که یک در واقع جرم فاحشی بوده دیگه از دعا میگن دلیل نمیشه طبیعتا فتحی بودن و این نمیشه صرف فتحی بودن چوب قاب با وساقت قابل جمعه نه یعنی اگه از داغم نمیفرمودن از ملاکی که اینجا میفهمند میشه به دست بود نه. کردم خدمتش. حالا اونایی که وارد این ماجرا میشن خب میگن فعلا سوال جواب ندید تا جمع بشه چشم ظاهر چی حسن ظاهر چی؟ آیا حسن ظاهر موجب وساقت میشه؟ حضرت آقا میفرمایند که نه صرف حسن ظاهر موجب وساقت نیست ببین عبارت حضرت آقا رو تو کتاب و جلسه 327 میگه حبیب همین حبیب سجستانی هست توصیق نشده او ابتدا از خوارج بوده و سپس انقطع الی ابی جعفر و ابی عبدالله علیهما السلام انقطع یعنی اتصال پیدا کرده و خلاص رفت وصل به حضرات شد و جز نزدیکان این بزرگ شده است که بعضی‌ها خواستن از تبیر انقطع الی وساقت اون رو به دست بیارن اما به نظر ما چنین استفاده‌ای صحیح نیست چون ارادتمند امام علیه السلام شدن مستلزم وساقت نیست یه جای دیگه می نه تنها مسلط و نیست حتی شما نمیتونید در بیاره که ادم آدم آدم میزونیه و سر جای خودش یه کسی که ارادت داره به ما میتونیم یه حتمانی ادم آدم آدم میزونی هست میگه نه حتی اینم نمیشه در میگر این قریمه ششوم اینم مجموعه قرائنی بود که در ارتباط با توسیق آینه رجالی این وجود داره اما یکی از اون از کنم عواملی که جز توصیفات خاص محسوب میشه استفاده از مجموعه قرائن که آقا توقات و اسانید و مشیخه و اجازات و احادیس و سیره و تاریخ و انصاب و این قرائن رو کنار هم دیگه میذارن برای اینکه به وساقت یک راوی دست پیدا کنن این همون کار اشتهادیه دیگه در واقع کار اجتهادی که متأخرین انجام میدن اینه برای اینکه وساقت یک نفر رو اثبات بکنم اینا رو کنار هم دیگه میذارن اگر این قرائن کنار هم دیگه موجب اطمینان شد میگن سره اگر نشد که نه درست شد خب بریم سراغ توصیقات آم و مبانی عزت آقا نسبت به این توصیقات ببینید طبق یک تقسیم بندی ما میتونه من اومده یه دسته بندی کردم این توصیقات آم و آقا رو بعضی از این توصیقات توصیق راویان کتاب ها هستش مثل چی؟ توصیق راویان تفسیر علی ابن ابراهیم قوم میکنن دونه دونه توضیح می دید و یا توصیق راویان کتاب کامل و زیارات ابن قولبه بعضی از توصیقات مربوط به توصیق مشایخ راویان هستش مثل چی؟ مثل توصیق مشایخ اصحابه ما یا توصیق مشایخ سب در واقع سقاط سقالی که میرسیم و جزیاتشو ارز میکنیم برخی از توصیقات هم بر اساس مبانی خاصه مثلا توصیق مشایخ اجازه اگر یک شخصی شیخ اجازه بود آیا این دلالت بر وساقتش میکنیم یا نمیکنیم آیا مساهبت با امام ها قلینه بر وساقت هست یا نیست که آقا در مورد همه اینها در واقع نظر دارن ابتدا بریم سراغ، وصیقه راویان تفسیر علی ابن ابراهیم قمی میدونید که تو مقدمه تفسیرش میگه و نحن زاکرون و مخبرون بما ينتهي الینا و رواه مشایخنا و ثقاتنا عن الذين فرزالله الله طاعتهم و اوجب ولایتهم و ولای یقبل يقبل عمل الا به این شهادتی که جناب علی ابن ابراهیم قمی توی مقدمه کتابش می در واقع شهادتی میدن بعضی از این اومد بعضی اومدن از این عبارت چکار کردن؟ استفاده کردن توصیق تمام رواتی که در سلسله اسناد کتاب تفسیر علی ابن ابراهیم قمی هستش که البته مسئله مسئله اختلافی چهار تا نظر وجود داره. بعضی میگن که مثل جناب شیخ خور عاملی و مرموع آی خویی میفرمایند جمی مشایخ جناب علی ابن ابراهیم یعنی تمام اون افرادی که در سلسله اسناد این کتاب هستن اینا چی هستن؟ سقه هستن نظر دوفم این هستش که وساق... وساقت مشایخ بلاواسطه اثبات میشه یعنی فقط شیخ بلاواسطه نه همه درست شد نظر سوم این هست که اصلا تردید دارن این عبارت عبارت جناب علی ابن ابراهیم قومی هست یا نیست چرا؟ چون این عبارت تو مقدمه کتاب اومده و این مقدمم خارج از متن تفسیر قومی هست از بعضی میگن اصلا عبارت جناب عرض کنم خدمت شما که علی ابن ابراهیم نیست و بعضی اومدن تردید کردن که اصلا این کتاب متعلق به ایشون هست یا نیست نظر چهاروان بعضی تردید تو انتصاب کتاب کردن کسا این کتاب بالا علی ابن ابراهیم قومی هست که خود اینا چند تا نظر هستن چند هستن سه دستن بعضی میگن خب تمام این تفسیر برای علی ابن ابراهیم قومیه بعضی ها میگن بخشی از این تفسیر متعلق به ایشونه و بخشیش مربوط به اول جاروت هستش مخلوط شده این تفسیر بعضی میگن اصلا همه این کتاب مربوط به شاگرد علی ابن ابراهیم قومی هست نه خود علی ابن ابراهیم قومی اما نظر حضرت آقا چی هسته؟ تو کتاب و جلسه جلس 74 میفرموین اما در مورد رجال تفسیر علی ابن ابراهیم همانطور که قبلا گفتیم چون این کتاب با تفسیر ابل جارود مخلود شده است یقین پیدا نمی که این راوی در سند روایت علی ابن ابراهیم واق وسیقه عام بشن و الا اما اگرشون میگن در یه موردی ما یه قرینه ای داشتیم تونستیم تونستیم اثبات بکنیم که این اون تفسیر اصلی است مال علی ابن ابراهیمه توصیفشو میپذیرین یعنی ایشون میپذیرند که اون حرفه برای اون،, اون شهادت شهادت علی ابن ابراهیمه و شهادت رو هم میپذیرند فقط اشکالشون چیه اشکالشون که این تفسیر مخلوط شده پس شما دست رو هر روایتی بذاری نمیتونی بگی این روایت آیا اون روایتی که علی ابن ابراهیم نفت کرد یا اول جالو بله اگر شما از روی قرائن یه جا فهمیدید که این مربوط به همون تفسیره اون شهادت شاملش میشود جمعی مشایخ. جمعی مشایخ. حالا این حرفو تو ابن بولبایی هم داره حضرت آقا ببین مناتش اونجام هست حتی ایشون نکرده و مناتی که ایشون تو اونجام میگن من عرض میکنم ببینید توصیق دوم توصیق راویان کتاب کامل و زیارات ابن بولوی هستش درست شد؟ ایشون هم تو مقدمه کتابشون اینطور میگن. میگنم وقت علم اننا لا نحید به جمعی ما روی هم فی حاضه المعنا ولا فی غیرهی لیکن ما وقع النا من جهت سقاط من اصحاب نانتیکه یعنی خلاصه این که میگه ما تمام احاسو نمیتونیم بیاریم ولی حالا همین مقداری که آوردیم از کیا گرفتیم از سقاط من اصحاب نارحمه الله به رحمته و لا اخرش رو بیه حدیثا رو عن عن شزاز منر رجال و ادامه عبارت دیگه خلاصه میگه من این رواحت که آوردیم از آدم شاز نگرفتیم حالا دوباره همین بحث مطرحه آیا این شهادت ابن قولوی رو قبول کنیم؟ این جانباز چند تا نظر وجود داره تو فهم این عبارت جناب شیخ خرر و نظر اول مرموم آی خویی آی خویی در ابتدا میپذیرند یعنی وساقت جمعی روات اسناد کامل و زیارات رو میپذیرند ولی بعدا رجوع میکنن ازش نظر دوم میگه وساقت مشایخ بلاواسطه ی ابن قولوی مثل چی نظر داده؟ میرزای نوری در صاحب کتاب مستدرک نظر سوم میگه این, روا... این عبارت دلالت دارد بر اینکه ایشان روایات مشهور رو ذکر میکنه و در صدد توصیق مشایخ خود یعنی مشایخ بلاواسته و یا روات اصانید این کتاب نیست،, نیست ایشو تا نظر وجود داره. اما نظر حضرت آقا چی هست و اون قول اول رو میپذیرن؟ حالا مناتره که گفتم اینجا است. ایشون میفرمان ابن قولویه تو کتاب قصاص جرسه نهم میفرمان ابن قولوی در اول کتاب خود میگوید من از رجال ثقات نقل میکنم. البته بعضی گفتن مراد از ثقات مشایخ بلا واسطه خود ایشان است. ولی ایشون میگه این خلاف ظاهره. این چرا؟ چون مقصود ایشان از ذکر این مطلب بیان اعتبار کتابه خب بیان اعتبار کتاب صرفاً با توصیق مشایخ بلاواسطه تحقق پیدا می کنه؟ نه دیگه اگه این کتاب بخواد اعتبار داشته باشه همه مشایخ باید سقاط باشن ما تون تون داریم صحبت می دیگه دوستان یواش یواش داره خواهشون میگیره بعد از اونم هست ها ساعت دو بدترین ساعت ممکنه خوب یه صلوات بلند رحمت بفرمایید بریم سراغ توثیق مشایخ اصحاب اجماع همون بحث اجماع بس اصحابه اجماعی معروفی که طبیعتا شنید یه عبارتی کشی داره اجمعت الاسابتو علا تصیح ما یسه همن ها اولائه و تصدیق هم لما یقولون و اقر رو لهم بلفیق سه تا شیشتان دیگه درسته؟ علاقه این شیشتان توشون برخی از افراد هست که اختلافی هم دیگه اگه اون اختلافی ها رو بذاریم رو هم دیگه هوده بیسه نفر میشن درست شد؟ توی تفسیر این عبارت مرحوم کشی اختلاف شده که این اصابت و علی تصحیح ما یسخ منها یعنی چی چند تا نظر وجود داره سه تا نظر بعضیا میگن از این عبارت وثاقت تمام راویان سلسله سند به دست میاد یعنی چی یعنی اگر اگر, اگر اینها این جوان. تو هر کجای سند قرار بگیرن از اینجا به بعد تا معصوم ما رواتشو میگیم چی هم؟ هستن یه نظر نظر دوم مبسق بودن روایته نه توصیق روات یعنی چی؟ یعنی اینا هر کجای سند قرار بگیرن ما ما بعدشو بررسی نمیکنیم. روات روایت رو معتبر می دونیم. نه اینکه حکم به توثیقه مشایخ اینها هم بکنه این دو تا نظر نظر سوم که نظر آخویی است میگه این عبارت تنها دلالت بر وثاقت خود اینها داره و این نشون میده خلاص اینا سقه عیار بالایی هستند اینکه منو کشیدم در مورد اینا این حرفو زده به خاطر اینکه اینا همچین سقه عادی نیستن خودت به تعبیرا آقایون یه لولشون بالا هستش و الله این نه دلالت بر وساقت مشایخ اینها داره نه به معنای اینکه ما چشم بسته روایت رو قبول کنیم. این سه دا نظر نظر حضرت آقا چی هستش حضرت آقا نظر دوم رو میپذیرند یعنی اگر اینها در سند روایت قرار بگیرن ما مابعدش رو دیگه بررسی نمی و خود به اعتبار این روایت می کنیم نظر ایشون این هست نگاه کنید لذا فرق پس اصحاب اجماع و مشایخ سلاس چی میشه که الان جلوتر می خب از اصحاب این مشایخ سلاس در وقت چی هستن؟ یعنی ابن و بزنتی و صفان همجزء اصحاب اجمام هستن، همجزء ها مشایخ سلاس هستن دیگه درسته؟ فرقش چی میشه؟ فرقش اینه که آ تو اون در واقع مشایخ سلاس توضیح میدیم. مشایخ اینها ثقهن، حکمه به سقه بودن مشایخ اینها میکنیم اما تو بحث اصحاب اجمام ما حکم به سقه بودن مشایخ اصحاب اجمام نمی کنیم. بلکه فقط میگیم از اینجا به بعد رو بررسی نمی کنیم، اعتبار داره. درست آقا؟ فرقش مشخص شد لذا مشایخ سلاسه چی؟ محمد ابن عبی امیر متوفای دیویست و هیوته ابن یحیاب متوفای دیویست و ده احمد ابن محمد ابن عبی نصر بزنطی متوفای دیویست و جناب شیخ در کتاب عدت الاصول در مورد اینها یه عبارتی داره میگه و ازاکان احد و راویان. موسندن ول آخرو مرسلن نوزر فی حال المرسل میگه اگر وقت اومد موسند بود یکش مرسل بود میگه نوزر فی حال المرسل ما اون که ارسال حدیث رو به صورت مرسل آورده تو حالش شکار میکنیم نظر میکنیم اینو. اینکانم به من یعلم انهو لا یرسلو الا انسقتن موسودن به فلا ترجهو لخبر قيله على خبره ولأجل ذلك ثبتت الطائفه بينما يروي محمد بن ابي اميه وصهب بن و واحمد بن محمد بن ابي نصر بزن بزنتي بزن بزن بزن بزن بزن بزن و غيرهم من سقات الذين عرفوا بانهم لا يربون ولا يرسلون الا ام ولاصح کنم خیلی طولاش نکنم ما حال اون مرسل رو نگاه میکنیم اگر اون کسی که روایت رو مرسل بود آورده از این جور آدما باشه کدوم آدما قرمزه سقاتی که عرفو شناخته شدن به انهم لا یروونه روایت نمیکنن و لا یرسلونه روایتو رو مرسل نمیارن الا امن یوسقو به مگر از کسی که بفرمایید بهش آره اعتماد داشته باشن حالا از این عبارت ما چی میفهمیم؟ فهمیم؟ بله بعضی اومدن این ادعا رو مطلقا رد کردن بعضی اومدن مطلقا قبول کردن این ادعا رو خب اگر ادعای شیف رو بپذیریم باید در واقع مراسیل این سه نفر رو این مسانیدش شده بدونیم یعنی مرسلاتشون رو قبول کنیم. برای روایتشون مرسله قبولش بکنی این رو بدون براد شد این ادعا رو مطلقا قبول کردن بعضیا رد کردن بعضیا تفصیل قائل شدن میگن مراسل رو میپذیریم اما مسادین مسانیدشون رو بررسی میکنیم این اگر روایت رو به صورت موسلا و میپذیریم اما اگر روایتشون مسند بود سرسل سرسل رو ذکر بررسی میکنیم براد حضرت آقا نظرشون اینجا چی هستش ایشون میفرمایند ما قول دوم رو میپذیریم ما به شهادت جناب شیخ اعتماد میکنیم و معتقدیم که روایت, روایت این سه نفر روایت اینان موجب اعتماد به آن راوی که از اون نقل میکنه لذا ما مشایخ این بزرگان رو این سه نفر رو حکم به می میکنیم به خلاف اون اساب ها تو اسابج ما ما حکم به بساغته مشایخ نمی کنه فقط میپذیریم روایت رو درست شده آقا خب اینه معنی مشافعی ب یکی دو تا اشکال جواب خوب هست ما اینجا حضرت آقا اشکالات مرمهای خوبی رو نقل میکنن و جواب میدن اینم بد نیست بشنوید اشکال اول از آیه خوی چیهشون میگه آی خوی گفتن ممکنه که اینطوری بگیم که شهادت شیخ شهادت حدسی است و در باب شهادت شهادت حسی متورث نه شهادت حدسی آقا جواب میدن بابا شیخ از عمل اسباب داره خبر میدیم یعنی به روایت اینا عمل میکنن و شهادت از عمل شهادت ان حسنه نه شهادت ان اشکال دوم که اشکال این آیه سبحانی هم حفظ الله میگن تو اون کتابشون آوردن این اشکال ها که خاطرتون باشه میگه ما چطور میتونیم به شهادت شیخ تکیه کنیم با اینکه ابن ابی عمیل از افرادی نقل میکنه که به تصریح خود شیخ اونا ثقه نیستن درست شد یه سری افراد هستن که عرض کنم جز مشایخ این سه نفر هستن خود شیخ اینا رو توثیق نمیکنه جواب این هستش که بابا اینا لا یورسلو الا انسقتن حضرت آقا میگه این انسقتن یعنی انسقتن اندهو لا انسقتن اندن ناس. یعنی جناب فرض کنید ابن ابی اومر از کسی نقل میکنه که بفرماید سقه بدونش خودش اشتاد خودش حتی اینجا اشتاد معنی نداره منظورم که سقه بداند درست شد؟ نا که حتما شیخ طوسی هم این رو صدق بدونه بعد تازه میگه ببینید مشایخ فاس گونه ابن ابی عمر بیش, بیش از 400 نفرن کل اون مصادیقی رو که شیخ باشون مخالفه کلاً 6 نفرن اگه نسبتشون حساب بکنین دیگه بازم صدق میکنه که بگیم لا یربو نعلای اورسلون الا ان سقط 400 به 6 حتی اگرم اینا ضعیف باشم بازم دیده نمیشه درست شد اما مرسلات احمد ابن محمد ابن ایسای اشعری چی؟ دونید احمد ابن محمد ابن ایسای اشعری شیخ قومیون بوده فی زمانه در زمان خودش شیخ بوده منصب اجتماعیم بوده رئیس بوده خلاص هر کسی ضعیف نقل میکرده از قوم چیکار میکرده؟ بیرون میکرده مثل احمد ابن محمد ابن خالد برقی رو که چون روایت ضعیف نقل میکرده از قوم بیرون میکنه حالا خودش یه سری روایت مرسل داره بپذیریم یا نپذیریم از اطاقا میکن میپذیریم چرا؟ یه با توجه به این که جناب احمد ابن محمد ابن ایسا آدم سختگیری بوده اما میدونیم که خیلی حساسیت داشته به نقل از زعفا کمون که مسادیقش هست که همین احمد ابن محمد ابن خالد بردی رو از قوم بیرون میکنه به خاطر نقل از زعفا پس اگر یک روایتی رو مرسل نفت کرده باشه طبیعتا از ثقات نفت کرده چون خودش آدم حساسی هست لذا ما عرض کنم خدمت شما مرسلاتش رو میپذیریم کتاب القصاص جلسه 85. و من باید زود تموم کنم دیگه اجازه بدید توصیق مشایخ اجازه چی؟ حضرت آقا میفرمایند که به عبارت رو کنید می جناب محمد ابن موسفن متوکل که شیخ و استاد صدوق است و صدوق از اون مکرر نقد کرده است اما این شخص رو توصیق نکردن آقاین رجالیون استاد صدوق رو چکار کردن؟ چیکار کردن؟ توثیقش نکردن. ایشون میگه لکن همون حرفی رو که ما در باب بعضی از مشایخ کلینی یا مشایخ مشایخ کلینی که رو نقل از آنهاست آوردیم همین جا میگیم. بگیم آخه امکان نداره جناب صدوق با اون عظمتش این همه روایت از آدم ضعیف نقل کن، غیر سقه نربون. لازم من زیر این کثیر النقل خط کشیدم. شرط داره ها. مثلا فرض کنه اگر صدوق از یه نفر یه رو باید داشته باشه دو رو باید داشته باشه ما میتونیم حکم به وساقتش بکنیم نه اما اگر این بزرگان ما کلینی صدوق از یک نفری کسیرن نقل بکنن این دلالت ور وساقتش میکنه اطمینان حاصل میکنه همین طور هم هست دیگه فرض کلینی میاد از یه آدم 50 تا رو نقل میکنه میشه آدم آدم زعیفی باشه؟ نباشه. ازايشون این رو میپذیرن توصیق مصاحبان معصوم چی؟ ایشون نمیپذیرن میفرماون که صرف اینکه کسی مصاحب معصوم باشه این دلالت بر وثاقتش نمیکنه آخرین نکته ای که میخوام عرض بکنم دیگه ارزم تمام 5 دقیقه به ما وقت بدید بس تعویض سنده خوش قرینه نمیشه چی؟ قرینه اطمینان در حدی که ما حکم وثاقتش کنیم نه اما اگر اینو در کنار قراهنه دیگه بتونه برای ما اطمینان ایجاد بکنه هاره. ولی به صرف اینکه یه نفر مصاحبه ازتا مصو... مصاحبه معصوم مصاحب باشید درست برای به ساختش میکنه. ما این همه راوی دروگو ادم نمه... چی بگم چپ و چول داشتیم که اینا مصاحب معصومین بودن حالا بگذریم همراه بگم میاد جلسات درس شای کردیم حتی... حالا بگذریم بیالا بسو سیاسی نکن واضحه دیگه الان مسادقش تو ذهنتون میاد دیگه خب ببینید من این ای اصطلاح تعویض سنده که یکی از ابتکارات های خویی هست و شنیدید چیه جریانش تعویض سند رو هاشنو از من یه توضیح مختصری بدم نظر از تو آقارم هست کنم این روحت رو نگاه کنید علی یبنو حسن ابن فضان ان عباس ابن آمر ان داود ابن خسین ان ابن ابوالقاسم فضل البغباغ ان ابي عبد الله قال قلت له هل النساء او عفوا قال لا و وذلك للعصبه دقت بکنید مرحوم عرض کنم خدمت شما طریق مرحوم شیخ به این ابن فضل چیه تو مشیخش نگاه کنید این ابتداش اینو داره که بسناده ی الى علي بن الحسين خوب تو مشیخه طریق جناب شیخ توسی به این ابن فضال چیه؟ میگه و وما زکر توفیادل کتاب ان علی ابن حسن فضال فقط اخبرنی بهی احمد ابن عبدون المعروف به ابن حاشر سماعن منه و اجازتا ان علی ابن محمد ابن زبیر ان علی ابن حسن فضال که این علی ابن محمد ابن زبیر ضعیفه پس طریق جناب شیخ توسی به این روایت چیه؟ به ابن فضال چیه؟ زعیفه پس این روایت از دامن اعتبار چی میشه؟ ساقط میشه حالا مرحوم آی خویی اینو چیجوری درست میکنه؟ من عبارت رو براتون بخونم یه گرچه اسناد شیخ به علی ابن معتبر نیست لاکن همین کتاب‌های ابن فضل رو مرهوم نجاشی از استاد خود احمد ابن عبدون نیز نقد کرده و شیخ هم شاگرد احمد ابن عبدونه پس تمام کتابی رو که نجاشی از ایشان نقد کرده عیناً نزد شیخ هم بوده و بعد میگه خوب ولی که اصلا شیخ هم خبر نداشته باشه پس نسبت ها به این کتاب ابن فضل یه طریق معتبر وجود داره درست آخواب ولی هم خبر نداشته باشه مشخص شد تحویز سند نشد آخر وقت ببینید این روایت رو نگاه کنید به اسنادهی اسناد جناب شیخ توسی به ابن فضال ضعیفه به خاطر علی ابن محمد ابن زبایی درست شد؟ آره. درست شد؟ آره. من رو ما خودم که خود روسش میکنیم الان این کتاب دست کی بوده داره نقل میکنه این کتاب دست کیه این کتاب کی شیخه میگه همدرسی شیخ همدرسی شیخ کیه نجاشی ها و این شیخ داره کی نقل میکنه کی داره نقل میکنه احمد بن عبدون میگه هر دوشون شاگرد کی بودن احمد بن عبدون بودن پس اگر طریق شیخ اشکال داشته باشه طریق نجاشی اشکال نداره چون این کتاب رو کی نجاشی هم داره دیگه اون به طریق صحیح نقل کرده ولی که طریق شیخ بفرمایید نام ضعیفه زعیف. نا اصلا ولی که اصلا خودش هم خبر نداری همچین کتابی وجود داره ولی ما میدونیم یه همچین طریق صحیحی از طریق نجاشی وجود داره دیگه درسته تعویز سنه ارزم کنم خدمت شما عزت و آقا میگن نه این رو قبول نداره میگن این قاعده قاعده خوبیه در صورتی که ما احراز بکنیم که این کتابی که دست نجاشیه دقیقا همون کتابی که دست شیخه و اینو ما نمیتونیم احراز بکنیم اینا که معلومیس با هم رفته باشن از استاد مثلا احمد ابن عبدون گرفته باشن ممکنه این یه موقعی رفته این یه موقعی دیگه رفته لذا ممکنه این نسخ هم چی باشن متعدد باشن لذا تعویز سند رو ایشون قبول نمی کن. حالا حالا مطلشو من دقیق اینجا نوشتم عبارت عزت آقارم نوشتم حالا این آخر وقت شد اگر متوجه نشدید میتونید عبارت رو نگاه کنید انشالله متوجه خواهید شد خسته نباشید یعنی چی؟ توضیح میدن بزن من ببندم جلسه. خسته نباشید خدا قوت و الحمدلله رب العالمین